نوار با همکاری نشر جامی تقدیم می کند هنر اشق ورزیدن نویسنده اریک فروم پیش گفتار کسی که این کتاب را به امید یافتن دستورالعمل العمل سهل الوصولی برای هنر عشق ورزیدن مطالعه کند، پس از پایان کتاب متوجه خواهد شد که وقت خود را بیهوده تلف کرده است. برعکس، در این کتاب نشان داده خواهد شد که عشق احساسی نیست که هر فرد بی به سطح رشد و بلوغ خود به سادگی بتواند بدان تسلیم شود. این کتاب قصد دارد خاننده را متقاعد کند که باید با جدیت بسیار برای تکامل کل شخصیت خود بکوشد تا به تعیین جهت سازندهی دستیابد و الا همه کوشش های او برای عشق ورزیدن بینتیجه خواهد ماند. زیرا بدون عشق ورزیدن به همسایه و بدون فروتنی راستین، شهامت، ایمان و انضبات برخورداری از یک عشق فردی حقیقی امکان ناپذیر است. در فرهنگهایی که صفات فوق کمیاب است، ناچار دستیابی به استعداد عشق ورزیدن نیز دستاورد نادری است و با اینکه هر کس می تواند از خود بپرسد که به راستی چند نفر ایثارکننده عشق واقعی را میشناسد. به هر حال، دشواری راه دلیل آن نیست که از شناسایی مشکلات و بررسی شرایط حصول به هدف دوری کنیم. برای اجتناب از پیچیدگی‌های غیر ضروری تا حد ممکن تلاش کردم که مسائل را به زبان غیر تخصصی بیان کنم و به همین دلیل کمتر به منابع و מאخذ ادبی موجود درباره عشق اشاره کردم. برای مشکل دیگری به کلی نتوانستم راه حل دلخواهی بیابم. بدین معنی که ناگزیر شدم عقاید بیان شده در کتاب‌های قبلی‌ام را نیز در اینجا تکرار کنم. خوانندگان آشنا با آثار من به ویژه آنها که با کتاب های گریز از آزادی انسان برای خیشتن و جامعه سالم آشنایی دارند متوجه خواهند شد که در این کتاب بسیاری از عقاید آثار قبلی هم دوباره بیان شده است اما به هیچ وجه نباید تصور کرد که کتاب هنر عشق ورزیدن خلاصه ای از کتاب های قبلی است در این کتاب اندیشه های بسیاری به غیر از آنچه در کتاب قبلی خوانده اید مطرح شده و طبیعتاً به مطالب پیشین نیز با دیدی نو برخورد کردم زیرا همه مطالب این کتاب در حقیقت در اطراف یک موضوع یعنی هنر عشق ورزیدن دور میزند.